ایسار و فداکاری، مهر و محبت و این چیز هاست با سعی و کوشش نمیشه عاشق شد با صرفن زوق و شوق نمیشه یک ماهواری رو به فضا فرستاد یک دنیای دنیا عبزاره میتونیم اون رو دنیای ابزار بگیم و یک دنیای داریم که دنیای بی است. دنیای دله، دنیای عشقه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 به طور عملی قابل اجرا هست لذا وقتی میگیم که فرادرمانی رشته ایست عرفانی یعنی یک نمود عملی داره که میتونیم ببینیم که حتماً کاری انجام شده که اسمشون میذاریم فرادرمانی اما در آن از هیچ علم و دانش و فن و تکنیکی هیچ کدوم استفاده نشده یعنی بدون ابزار این کار سرعت گرفته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 و در واقع چیزی غیر از اتصال در این ارفان وجود نداره این در عرفان عملی چیز جز اتصال نیست یعنی ریاضت و اینها اصلا اصلا و ما اعتقاد داریم که کمال به ریاضت نیست همونطور گفتم پایه و اساس تعالی انسان اشتیاقه. انسان اگر مشتاق باشه اون رحمانیت آمه اللهی در اختیارش هست و میتونه استفاده کنه و انسان در واقع برای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 همون رسیدن به ادراک به رسیدن به حال اشراق و روشن شدهگی است پردمی اساس عرفان حلقه است هم عرفان حلقه میشه توضیح بفریید نام عرفان حلقه از اینجا برین عرفان گذاشته شد که مبتنی بر استفاده از حلقه های متعدد رحمانیت عام الهی هست که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 میزنه پشتش میگه بچه جون مواظب باش جلو پاتو تو نگاه کن این وظیفه بزرگتره و بزرگتر با وجوده که میدونه بازیگوشی بچه و سهلنگاری اون بازی زمین خوردن شده ولی باز دست او رو میگیره و بلندش میبنه ما تیگه مراحل مختلفی ثابت میکنیم که بیماری مسئله زمینی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 حلقش جاره میشه اتصالش به قرار خواهد بود و همطور که خدمتون ازگردم هفتاد درصد بیماران گذشته از نوع بیمارشون درمان میشن سی درصد خیر؟ کار دنیای علم بررسی واقعیت هاست حالا این بررسی واقعیت ها به شکل های مختلفی صورت میگیره یکی از این شکل ها بررسی آماریه در مورد فرادرمانی هم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 شما بفرمون خب اینا فرادرمانگره خودتون و اینا دیرو جز شما بودن امروز اومدن جز ما ولی در اینجا در واقع خیلی هم اصرار دارن خیلی هاشون که بگن که مثلا نشود. ولی خب شده دیگه آمارهای رو که میدن هفتاد درصد حالا میانگین یه چیزی هم خودمون کمش میکنیم هفتاد درصد درمان نشون میده سی درصد درمان نداریم تحلیل تو نسبت به سی درصد چیه؟ سی درصد یه درصد چون شاهد نمیشن خب یعنی شاهد نمیشن که میگیم بیترف باشید ولی اونها تجزیه تحلیلات علمی میکنن وقتی تجزیه تحلیلات علمی بکنن توی اتصال قرار نمیگیرن توی حلقه که تحریفتاره قرار نمیگیرن و طبیعتاً بینصیب میمونن یه درصدی طبق قانون تولد و مرگ اصولا، پیهشت جواب نگیرن یعنی هیچ سیستمی در عالم هستی راندمان 100 درصد نداره و این مسئله رو هم همینطوریه پرینک اگه راند فازان 100 درصد دارم و در مشان مارک متفاوت میشه و همچین سیستمی در عالم هستی سیستمی که راندمان 100 درصد بده نمیتونه وجود داشته باشه ولی به هر حال از این 100 درصد ما مواردی مواردی درصدش رو میتونی برگردونی با تغییر در بینشهاشش که متقاعد بشن اینجای وادی علمی نیست و تفسیرشونو بزارن کنار شاهد بشن هفتا درصد درمان که میدونید بدون هیچ ابزاری بدون هیچ مسیله ای یک بحث قابل توجهی نسبت به پزشکی رایج که حتما بایستی مورد توجه و قرار بگیر چه توضیحی بدین با چه کاری به درمان رسیدن هم اتصال توضیح بدین فقط بحث اتصال و بدون هیچ ابزاری بدون هیچ تکنیکی یعنی چه کاری انجام بدین فقط موضوع کاری که خواسته میشه اینه که بیمار اسکن رو که روی صورت میگیره یعنی همین هوشمندی این اسکن رو روی اون انجام میده و روی بیماری های مختلفش کار میکنه فقط اون توجه به اون اسکنا بکنه حالا گزارش داده ندادین وقتی دونستن نوع بیماری اصلا اینجا نقشی نداره بیمار باید چه کاری انجام بده؟ بیمار هیچ کاری نود بکنه. نه تخیور، نه تصور، نه تلقین. هیچ کاری فقط تنها کاری که انجام میده اینه که میشه چی ما میگیم شاهد. اگر حواسش جمعه میتونه چشم باز. اگر حواسش جمع نیست، با چشم بسته این مسئله رو پیگیری بکنه بهتره. ببینه این هوشمندی اسکن رو که رو بدنش انجام میده و بیماری رو که شناسایی میکنه که به صورت درد گرفتن تیر کشیدن ذرب آن زدن تشنوج و سرد و گرم شدن و دیدن نور و رنگ و غیره بین ها در واقع فرد رو بیماری رو شناسایی میکنه و بعد شروع میکنه به حل و فصل بیماریش فقط باید همین رو چه مدتی؟ مدت از آن داریم تا ممکنه چندین جلسه هم بعضی از ها چندین جلسه طول بکشه به ماه و یکی دو ماه هم بکشه ولی بیمار روند بهبود خودش رو در هر جلسه میتونه پیگیری بکنه یعنی کار کوری نیست به چه چی چیزایی بسته‌ای داره به بینش فرد فردی داره به توان درمانگر ورستگی داره توضیح دادم که این مسئله توان درمانگر که رفت کنار مون توش بندی مسائل بیمار هم همش رفت کنار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 و رحمانیت الهی ارتباطی به خصوصیات فردی افراد نداره حتی گناکاری و بی این پاک بودن و ناپاک بودنشون رو به هیچ کدوم از اینها ارتباطی نداره و این رحمتی است که شامل حال همه است شنو بیماریایی رو جواب داده ما استثنایی نداشتیم فقط همین رو میتونم بگم که توی تجاربی که وجود داره تقریبا میشه گفت که روی همه نمونههایی تجربه شده و جواب هست یعنی اس سرطان بیماری روانی احز کردم خدمتون بیماری های گروه پزشکی و روان پزشکی پاسخ داره یعنی دیگه ازلا نیمونه نیست که ما بتونیم بگیم نمیشه به دو دلیل یکی تجربه یکی به دلیل تجربه و یکی به دلیل اینکه وقتی با شعوره لایی کار میکنیم امکان هر چیزی هست و ما اجازه اینو نداریم که بگیم نه نمیشه باید ابتدا تست بکنیم، ببینیم میشه یا نمیشه اما تجربه‌ای که تجاربی که به دست اومده نشون داده که ما انواع اقسام مشی دارو داریم. حتی آرتروز یعنی شده که جنبه مکانیکی داشته، یعنی بمبست پزشکی اینجا باز شده. به اعتقاد ما بله. و میتونه باز بشه و با توجه و تحقیقات میتونه این قضیه صورت بگیره. خصوصا در زمینه روانپزشکی که قطعا معالجه و درمان کار خیلی ای است در اینجا وجود داره و انجام میشه در مورد پیوند اعضا چطور بله یه مسئله هست که تو تئوریامون ارائه دادیم بحث عدم هم‌فازی شعوری عضو دهنده و گیرنده است اینا از نظر شعور عضوی که میاد یه شعور داره عضوی که میخواد این بگیره یه شعور داره اینا با هم همخان نیستن همپاز نمیشن و بسیلا بعد از مدتی شعور گیرنده شعور اونو پس میزنه شعور اون اینو پس میزنه و علا رقم همه کارهایی که صورت میگیره در پیوند احضا میبینید که امکانه پس زدن وجود داره حالا در بعضی از ها در کوتاه مدت پس زدن عضو مشهود میشه در بعضیا طولانه مدت بزن همه چند ما. در فرادرمانی بخشی هست که مخصوص این افراد و هنفاظ شدن شعور سلولی رو در واقع انجام میده و افرادی که عضو میگیرن از پیوند کلی و غیره و اینها در واقع یک هم‌وازی شموری میشن حتی اونه که عمل بایپس قلب انجام میدن که رگ از پاشون میارن توی قلب کار میذارن باز هم ممکنه که دچار عدم هم‌وازی شموری بشن با وجود که این از یک بدنه که با استفاده از این مسئله فاز شدن شعور سلولی صورت میگیره و امکان یا احتمال پززدن عضو کاهش پیدا بکنه الان تو فرادرمانی که عوض معیوبی کاملا سالم میشه یعنی تم کاری که عقل میخواد با عمل جرای دار انجام بده تو دنیا کمیت یعنی پس عش میاد تو دنیا کمیت تصرف میکنه دنیا عرفان با دنیا شعور سر و کار داره و چون همه زرات عالم هستی از شعور و حوشبندی ساخته شدند در واقع صرفاً اونجا با دست بردن تو کیفیت شعوری هر عنصر، اون عنصر شکل میگیره بخش عملیش چجوری اتفاق میفتید؟ بله این مسئله فقط است. که این تحفیز خب حالا یا توسط من یا توسط مربی هایی که داریم چون افراد پتا چند دوره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 در دفتر نباشد این تعفیز به دنبال مکتوب کردن یک سوگندنامه انجام میشه این صرفاً مبتنی بر استفاده صحیح و درست و انسانی از این ماجرا هست و در واقع صرفاً یادآوری این مطلب به فرد که دچار غرور و منیت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 این درمان ها میشه، همکن اون تعداد مالا هم از پزشکاممون روان پزشکامون دارن از این مسئله استفاده میکنن به این دیدگاه ها مجهز شدن و خصوصن که دوره های ما رو در زمینه فرابپزشکی که بهصللا مخصوص پزشکا و, و روان شناستا بود اون هم هست برای آشنایی بیشتر،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 از جوابند انرژی درمانی که یا همون پولاریتی درمانی پاس دادن با دست روی حوزه پولاریتی انسان رایت شد یعنی این استعداد شخصی شه یا با تمرین دست آورده بعضی از افراد حوزه پولاریتی قوی تری دارن بعضی هم خب با تمرین هم این گسترندگی رو دو میکنن ولی به هر حال یه مطلب است که همه حوزه پولاریتی دارن حالا ضعیف و قوی این حوزه رو دارن خب منطقا در بعض افراد مشخصا قوی تره در واقع انرژی کیهانی و رو میاد با انرژی پولاریتی خودش همراه میکنه خیر. چون این مسئله از راه دور نزدیک با دست بدون دست انجام میشه ازن نیازی نیست که فرادرمانگرد از دستش استفاده بکنه که اینجوری تلقیه بشه که حوزه پولاریتی رو با نیروی کهانی و علاقه نیروی کهانی یه چیزه شعور کهانی یه چیز دیگه. شعور کهانی حوشمندیه نیروی کهانی نیروی حیاته نیروی است که اونم خودش افراد حالا میان باش آشنا میشن چیزی بنامه ما چیزی به این حساب می میتونن باش کار بکنن اما الزامی به استفاده درست اصلا نیست و راه دور و نزدیک هم توی این درمان مهم نیست و بود مسافت و اینها هم متن نیست چرا چون هوشمندی که حاکم بر این جریان هست برای اون بود زمان مکان مفهوم نداره چون نه ماده است و نه انرژی در واقع هوشمندی نه ماده است و نه انرژی لذا بحث درمان به هر صورتی امنجست بود